یه توضیح کوچیکی درباره این شعر باید عرض کنم و اون این است که این شعر برای یک اجرای مثلا فرض رادیویی است با چند صدا اجرا خواهد شد چون پرسوناج های مختلفی داره البته این شکلی که بنده الان یک نفری بخونم زیاد شاید جالب نباشه منته من هر گوینده رو خواهم گفت که مثلا کی این جمله رو خواهد گفت. راوی بر صفره سور در دیس بزرگ بدل چینی خنجری کج نهادند آقایان جدا بیتارف غلامان میهمانان را از میناهای عتیق زهر در جام می کنند. لبخندشان لاله و تذویر است انعام را به طلب دامن فراز کردند که مرگ آسان تقدیم می کند. مردگان را به رفها چیدهاند زندگان را به یختانها گرد بر سفره سور ما در چهره های بیخون هم کاسگان می نگریم. شگفتا ما کیانیم نه بر رفچیدگانیم که از مردگانیم نه از صندوقیانیم که از زندگانیم تنها درگاه خونین و فرش خونالود شهادت می دهد. که به پای بر جاده از شمشیر گذشتید یک مدعی که بر سفره فرودایید زنان را به زردابه درد متلا کردند دلقک باغ بیتندیس فرشتگان زیبایی ناتمامی است صدایی به سرعت نزدیک میشه و به همون سرعت دور میشه و آخرین جملهش با صدای گلوله قطع میشه جملهی ای که این تکرار میکنه گزمه ها قدیسان جمله او بعد از سکار بار تکرار با صدای گلوله قطع میشه سکوت ممتد سنج و تبل گروه ازاداران از خیلی دور صدای قدم های ازاداران که به آهستگی در حرکت هم در زمینه خطبه مددا که پیداست بر جنازه این شهید میخونه مطه میگه گاه گاه از دور شنیده میشه مددا با تنین سرودی خوشبد رقش کنی که شیطان فرشته برتر بود مجاور و همدم حراس به خود نگذاشت اگر چه بالهایش جاودانگیش بود فریاد کرد نه اگر اگرچه میدانست این غریب نومیدانه مرغی پرشکسته است که سقوط میکند شرم سار خود نبود و سرفکنده در پناه سرد سایه ها نگذشت راهش در آفتاب بود اگر چند میگداخت و طعم خون و گدازه‌ی مست داشت و گردن افراخته هر چند آنکه سر به گریبان درکشد از دشنام کبود دار ایمن است راوی گفتندش چنان باشد که آواز کرک را انکار کنی و زمزمه آبی را که در رهایی می سراید این تیکه از زبان خود اون شهید هست لیکن این خورد نمون حقیقت عظیم جهان است. و عظمت هر خورشید در محجوری چشم خردی اختر می نماید. و ماه ناخن کاغذین کودکی که نخستین بار سکیش به مشتندر در تا به مغرازش بچینند ماه ناخن کوچک و تکشاهی سیمین فریب اما آن کوب پذیرت خیشتن را انکار کرده است ماه ناخون کوچک و تکشاهی سیمین فریب اما آن کوب پذیرد خیشتن را انکار کرده است این تاج نیست که از میان دوشیر برداری بوسه بر کاکل خورشید است که جانت را می و خاکستر استخوانت شیر آن است مدا زنان عشقها را آورده بودند اندام هایشان از حرارت پذیرفتن و پروردن تبدار می نمود طلب از کمرگاه هاشان زبانه می و قایت زیبایی بر اوریانیشان جامعه اسمت بود زنها خودشون جواب میدن. ریشه فروترین ریشه از دل خاک نداداد عطر دورترین قنچه می باید اصل شود مداد مادران در طلب شما عشقهای از یاد رفته را باز که خون شما تجربهی سربلند بوده است مادرها خودشون جواب میدن. ریشه فروترین ریشه از دل خاک ندا داد عطر دورترین قنچه میباید اصل شود آه فرزندان فرزندان گرم و کوچک خاک که بی گناه تا گرفه های بهشت را بر والدان خیش در بگشایید. ما آن قرفه را همکنون به چشم می بینیم بر زمین و نه در سراب به لرزان بهشتی فریبناک با دیوارهای آهن و سایه های سنگ در پناه درختانی سایه گستر که عطر گیاهیش یاد آوره خون شماست که در ریشه‌های ایمانی امیغ میگذرد. مدا مردان از راه کوره های سبز به زیر می عشق را چونان خزئی که بر سخر ناگزیر است بر پیکره‌های های خیش می و زخم را بر سینه هایشان. چشمانشان عاطفه و نفرت است و دندانهای اراده خندانشان دشنه معلق ما است در شب راه زن. از انبوهی ابوس سیاهی نقبی سرد میبرند آنجا که آلش و افرا بیهود رسته است و رستن وظیفه است که خاچ خمیاز کشان انجام میدهد. اگر چند آفتاب با تیغ بر هر صبح بند نافگیاهی نور استراغت می کند و به روزگاری که شرف ندرتیست بهتنگیز که نه آسایش خفتگان که سکون مردگان را آشفته می کند خطیب پیام گزاران پیام گزاران قدیس نمودن را چه لازم است که پشت بر مغرب روزی چون این سنگین گذر بنشینید و سر در مجمر زرین آفتاب بگذارید چه لازم است چون اون بنشینید که آفتاب حال برگرده صورتاتن شود که آن دشنه پنهان آشکار شما از پیش حجت به حقانیت این رسالت یزدانی تمام کرده است راوی دروغ استوار نشسته است بر سکوی عظیم سنگ و از کنج دهانش تفخنده رضایت بر چانه می دود. چیان از دریا تا دریا بر چارگوشه ملک هر دری را به تفخص میکوبند و جارچیان از پس ایشان بانگ برمیدارند با شایسته خداوندگار با کرهگانی شایسته شایسته خداوندگار دلغک با خودش که باق افونت میراثی گران است باغ افونت راوی <تصفح> اما رعش افتن پرسشی تنور کشان گرد بر گرد تو از آفا برمیآید آید مدعیان شهادت داده ای که وسعت بی زمان را در گردش چهار جای سال در یافته ای شهادت داده ای که راز خدا را در قالب آدمی به چشم دیده ای و تداوم را در عشق هنگامی که آفتاب در پولک پوک برف هجی می شود آیا بهار را از بوی تلخ های خوش که به گلخن می سوزد به لب خواهد گذشت دلغک نیشخندی آری گزمها قدیسانند و حقیقت مطلق جهان اکنون به جز این دو چشم بدندیش خونچکان نیست این دو چشم خیره بر این سر که از پس شیشه و سنگ دزدانه تو را میپاید. پاید میدانم. می دانم و به صداقت چشمان خیش اگر اعتماد می داشتم دیری از این پیش دانسته بودم که آنچه در پاکی آسمان نقش بسته است به جز تصویر دور دست من نیست خطیب تو می باید خاموشی بگزینی به, به جز دروغت اگر پیامی نمیتواند بود اما اگر اتمجال آن هست که به آزادی ناله کنی فریادی در افکن و جانت را به تمامی پشتوانه پرتاب آن کن اجازه بیدید یک ده دقیقه استراد بکنم